بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحیم تخلق به اخلاق الله یعنی چه خدا در حاله کریم خودشو معرفی کرد چون کسی بلند نبود که خدا چیجوریه ازا آیات که ناظر می قسمتی هم به معرفی خدا می پنداخت. خدا هست خدا شریک نداره خدا علی قدیر سمیه بسیر این چیزهایی که باید خدا داشته باشیم. به این صورت در اواخر آیات قانبا به منظور معرفی و اشتناسوندن خدا به انسان ها نازل شده اونجا داری خدا مثلا نقایص نداری قیوب نداری چیزهایی که خودش عنوان عیف در ما معرفی کرده ما هم باید متعلق نمشیم متعلق نمشیم اخلاق خدا بی عیف باشیم حسود نمشیم متکبر نمشیم مثلا این ایومی چ گفته شده این داشته باشین منم تحلیم و اخلاق خدا من